بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین صلو الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاقرین المعصومین و لعفت داری مرخال و اداره مجمعین اللهم رفت داره شمیه و شمیه و رحمت داره رحمت داره از شد دهتی حضرت رسولی در آموخات و در که در حقیقت به این صورت اقتداراً پرد شده تمسک به آم قبل سخت از مخطط یا از هر من صابقاً این هم پیردم بحثایی که در مرحله آم میاد اینا خوب خوبش این محورن که موارد تمسک به آم کجا دارد اینو خوب در قبل بحثایی هم که و بحث لاحق شرابانه از شد که آم در کتاب کلمات اصولی مراد اون قاعده ای است که یور حوالهی ها حکمی که به نحو قاعده کلیه ذکر شده که یور حوالهی ها درفش شد. یورج حوالهی ها درفش شد. و لذا سبب این نسبو معز کردیم ممکن است ما یک آم عدوی داشته باشیم دلحاظه ادبی آم باشه اما آم اصولی و قانونی نباشه متن قانونی نباشه ماده قانونی نباشه این طبیل رو من کراورا ارز کردم اشاره سریع ارزو کنم ما مثلا احتمال دادیم این که اتخواری ها میگن زمان به کتاب موجتی شاد مراد جدیشون این باشه که به این صورت تحقیق کردن یک کمی معبول کرد بود و ا عمومات کتاب عمومات قانونی نیستن عمومات عدوی او اوهو بلهود این عموم ادبی هست جمع محل دارد الام عام هست اما عام قانونی نیست ولی چرا؟ نه این که که در کتاب شریف زواهر سجر نیست نه این بنابراین بوده که در کتاب شریف قوانی به نحر قانون اساسی باشه نه به نحر مواد قانونی یعنی برای بیان چارکونها باشه ولی زا از خرد ایش گوهه معروفی رو که مثل مرگوم ناینی آرکوی دیگران اشتاری کنم در اخواری ها چرا میگیم به اوفر به زخور تراثیف نمی کنیم به علموم اند شروعه هم تراثیف مرگه جمعه چرا مرگه کنم فرقش که یکی در کتابه یکی در سنته یعنی این ادعا این خذکرم اخواری اینجور نمی کنم حالا بنده از طرف اونا ادعا به این صورت که عموماتی که در کتاب آمده یا اطلاقاتی که در کتاب مثل الله البشت اینا عموم و اطلاق نیستن اما اگر همین عموم و در سنت بیا قانونیه به این صورت تحنویسه خیلی دیگه خویه نیست اون قواهت اولیش از بیرون چون اولیش خیلی از یک یک جد یک جد میده این اشت اگر به این صورت و این صورت قشنگی هم همه واقعا قابل تر البته کتاب قانونی قانون در کتاب قانون اساسی الان هم به اصلاحات قانون اساسی که تناسب پیدا کنیم. نشده داریم؟ در اصلاح نه تفسیر وارد کنه نمیشه به اصلاح، اصلاح قانون نداره. به نظامشون یه شورای نگهبان، اگر اصلاحون همه قانون‌گناه بشن اصلا <laughs> خاطر شورای نگهبان نبود. اگر حقوق قانونی بود تمام حقوق دانان حق دارن به قرآن ازازی تمثل کن مقام احماله؟ ما حالا اینا تعدیرشون دارن مقام احمال اصطلاح و چون یک مقام اجمال دارنده مقام احمال یک مقام بیان ما که مقام احمال از کردیم قانون ازازی یا که تعدیرم احمال در قرآن کار ببریم یون قرآن محمد ازازی یا روزیم ما این غیر مناسب در قرآن به کار برده نشه. به جایی رو منطبق به اندریه قانون اساسی پس اگر مراد اخباری ها این رو قرار میدادن یک مقدار شکل و شمایل معقولی و این هدفشون هم همین بود یعنی هدف اخباری ها و این هدف علمای شیعه هم بود این سه باشن این بود اهل سنتشون روایات هم داشتن خیلی به اطلاعاتی کتابی تمام کردن هدف اهل بیت هم این بود که به اطلاقات کتابی تمسک نشه کتاب در ضمن سنت تصدیق بشه. جوابی داره به اصل از... اهل سنت تصدیق شما می‌کنی با اخبار یا ما دووال جواب بدیم. نه دیگه اصلا حرف خوبیه. فردا جوابش آه. اینه که شاید بعضی از آیات کتابی اطلاق نشده باشه. حالا این توضیحاتی هست شما خیلی مفصل چند بار عرض کردید الان نیست. یه وقتی مثلا من آن از کلام اهل سنت بودن زاره اخلاق با برای چون با مفیده ترتیب نیست فسر اونجا عمره ای که میشه عیدی رو بر مقدم مقدمه هدف اهل این بود این اخلاق نداره فسر اونجا با اخلاق نه این فسر اونجا عمره ای که باید با سنت نهنا کنیم. و پیغمبر در طول تمام زندگیشون همیشه اول صورت میشدن بعد دفتر میشدن پس نظر از برد. اخبار و همین لباس آوردن ما اون روتی اینجوری معنا بکنیم بگیم مراد رهانات اینه که قرآن رو به تنهایی به اطلاعات لفظی و عموم لفظی تمسک نکنیم قرآن رو باید در زمین سنت معنا بکنیم است که قرآن رو به ترجمه حالا قرار نیست تریصالات رو اثبات بزنم یه دیگری از اون صورتی که حالا در ذهن‌ها بود درآمدی مقدار به داخل جایی بحث داره که اطلاقات و امواتی کتاب عمومت این بنابراین دقیقه بزنوید یعنی نکته چیه نکته در عموم قانونی به اطلاق قانونی ضرب قائده بر رفع شرک اما فخص رو جوحکم و ایدی هکم نیامده بر رفع شرک از اون نکته اساسی رفع شرک ولیدار این بحث که ما تا حالا تو بحث آم و خاص دارید نکتش همینه نکتش همینه نکتش و در مسائلی که شما کل هم توی آم و خاص میکنید دنبال دو نکته هستید کدوم آم صلاحیت این کدوم لفظ صلاحیت این کار داره دو کدوم شک رو شما با آم برمیدارید این خیلی مثله مهمیه بحثی که ما قبل از این شروع کردیم بحث معروفی بود شباهات مصداقیهی مخصصی شباهات مصداقیه مخصصی مخصص. مثلا گفت اکرامل علماء بعضی از یه حالا سبحان فساقل علماء زیر مسلم آلم هست نمیدانیم فاسق هست یا نمه عملی از اون صادر شده یه دور رو همون که موجب فیض خوشی مثلا غیبتی کرده حالا غیبت مجاز باشه فاسق نیست غیبت غیر مجاز باشه حرام باشه فاسق آیا در اینجا او بهخفی ض شخصی در خارج عالم هم خاص سس و احراز نشده. آیا این شخص رو میتونیم با اکمال ال ها برداری این اینبحث مفری بود که همون مثال محوب کل و امرارت این خردن ام همسین سنه اللا ان تفون امرارت در انورشت به انع طردن لتللف می زنه؟ این بنابراین اینطور میشه؟ خانمی هست ایشان نمیداریم قرشیه هست یا نه آیا اون قائده کل امرعتم تر از زن الاخمسی نسنه شامدش میشه یعنی آیا این کل امرعتم تر از زن الاخمسی نسنه این این شخص رو بر میداره یا نه پس اون بحث اساسی در بحث آن مخواست. این فروضی که شما در آن مخواست می این مسائلی که در آن ما خواهد اینه پس ما دو بحث می‌کنیم. یکی این که که این عام صلاحیت داره دو اینکه که کدوم شرف رو میتونیم با او برداریم این بحثی که الان در اینجا شده این است که آم شد یک اصل لحظی است آیا به مجرد شک در تخصیص میتونیم با آن مراجعه بکنیم، کنیم این صلاحیت رو داره یا بعد اول فصل از محسس بشه بعد از او صلاحیت رفع شکل داره ارزم کردم چون شاده نوز یک نتیجه نهایی بگیدیم اصل بحث هم همونطور که ما دیدیم در کلمات برج از علمای اهل سنت اونا این نقطه ای که پیشون بود این بود چطور ما به اصال حقیقه مراجعه می بدون فصل از مجال پس به اساس عموم مراجعه کنیم بدون فهض از محسس خیلی بحث آسان چطور ما در فهم کلمات قرآن و سنه به اساطل حقیقه مراجعه میکنیم و فهده از مجاز نمی کنیم اساطل عموم هایی اینطور اساطل اصلاح ها در پس ما با اساطل عموم با اساطل اصلاح مراجعه میکنیم بدون فهده از محسس این ترهبه آیا واقعا این یا نه این بحث به این صورت مطرح شد در کلمات آمه خب طبعا تو اصول آمه ما یه بحثی رجی جبه کدو اصول عملیه داریم و فحث اونو اینشادا خواهد آمه مظلوم هم متعرضش اینجا فحث و این رو همه مخصص که آیا فحث از مخصص ما این عام ما بدون فحث هم جیت داره پایدتون آمه ظهر و ضرف اشک یا نه این قاعده بودنش بعد از سخت از مخصصه وقتی از مخصص سخت کردیم و پیگان نکردیم اون وقت هم از صفحه به عموم آم می کنیم فرق بین اساطر حقیقه و اساطر عموم به این جد روشن روشنش این راجبه امز کردیم چون یه بحثی هم در اصول ما آمده راجب فهض از دلیل در فصل از, از موارد اصول حملیه یه از این اصولی مترخیر ما که حتی تو علمای سنی ها من نایدن به مناسبتی بینی این بحث با فصل در اصول عملیه رو مقایسه کردن که دیروز متعرض دو سه بود متعرض هستی کلمات مرحوم نایدی و مرحوم نایدی بود بله فرقش اینه که ما در اینجا اصالت رومون خودش مختبی هست بحث از مخصص بحث از رتوه مانع یا مزاحم به تردیل اما در اصول عملیه بحث از فحث برای بیان طوانیت خود است برای لابیان دودن شهر این خلاصه عرض رنوان داریم آقای خوبی مخواهد بفرمین نفرمین اون کنه عرض مزهند ما چه در بحث از اصطلاح مخصص اینجا هم چون ما می در این شریعت مقدسه نه در وقیه قوانی ما و تحسیصات به یک بیان واحد بخصه نشده ممکنه عموم در زمان پیه همبر در خایر باشه مخصص بعد دیمیس سال باشه. پس در اینجا چون این امکان هست ما و اگر میخوایید به عموم مراجعه بکنیم باید تنقید بشه اقیقاً عمومه و بدون مخصص اصبات عمومه میمیشه برشتر. یا اثبات تخصیصه. و این هم شکریه هم در مرحله مختصیه. در اصول عملیه هم دو جوره بعضی هاش راجعه به مانعه بعضی هاش راجعه به مختضیه مثلا قسول عملیه اگه در شماعته حکمیه کنیه باشه برمگرده به مختضیه اما اگر در شماعت موضوعیه باشه به برمگرده به مانعه چون در اونجا فرص راضی نیست. will مثلا اگر شک کردیم در اینکه که مثلا خیار خیار الان مجلس یا خیار مثلا فرص کنم مثل خیار 상الی مجلس که چون معایل مردم مثلا خیار غرن استثاب ببارخیار میکنیم بعد از آن اول استثاب ببارخیار میکنیم خب پیل میسونیم استثاب ببارخیار رو که به عدله برگردیم جلیلی پیدا نکنیم اگه در این پیداکه اینجای استثاب نیست که پس در اصولی که در شباهات و کلیه جاری میشه ما فخص نکنیم برای مرحله تمامیت مختزی چون مختزی ظرف جهله و این جنگ محقق نمیشه نگه با ف اما در تو باات موضوع اینطور جون زل زده بوده, بوده. بوده. اون ما پای فر همنگیم بالا ها زنده است از کجا میگییم اون ده استصابیی بود مادییه مراجع نمی کنیمیم بریم از بعدش پرسیم زل فور کرده فوت نکردفلی برسید نه مراجعه ای و اصول جابی این لذا فرقی نمی‌کنه. اصول عملیه هم مثل غیر اصول عملیه فرصل از مخصص فرص از مخص در سیره اوقلا از قیل مزاحه س یه اوقادای مجلسیه قانون عام می‌گذاره و بعدا همه حقوق دارها همه افراد بناشون بینه که به اون عام عمل بکن تا مخصص بیاد تفسیر یک و دو بیاد هر در اصول مو... هم در موضوعات خارجی میتونه ما در موضوعات خارجی اون تا ما با دلیل میتونه فقط اون چیزی که با واقع احتسابی باشه مثلا شما گفتید اما لازم نیست که فرض بکنید اگر بخوام به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم نظرتان طاسته نذریم مثلا میگه فرض کنیم ایم. که بله الاسب. به این معنا که به من بفرسن میگه اما من لازم باشه برم سوال بکنم که از ذیل این یه موضوع ایز. حالا من اینجا یک توضیح خیلی اجمالی عرض میکنم توضیح مفصلش بعد خواهد آمد این خودش علتی بحثیه که چرا در اصول که در شواص و حکمی کلی هست فرض لازمه و در موضوعات فصل لازم نیست یه وقت بحث دوم این که آیا در همه موضوعات بحث لازم نیست یا تفصیل قائل بشید من دیدم بعضی وقت‌ها موارد برای اینکه موضوعا هم فرق نکنه مش احکام می‌خوام اگر از مفصلین یا مثلا اصلی بارو بر حیات ذهب به مجرد استصحاب اثر رو بار نمی‌کنه مثلا اگه ما نبیدیم که اگه امروز زنده بود صدره دیروز من دیم زنده با اصحاب بگیم امروز زنده صدره میرم نه باید برو فحص بکنه سوال بکنه برای سوال رضا یه ترگی هست در مسئله که در موضوعات خارجی هم فحص لازم بوده اون نمیشه فرق با احکام نداره این یه, تره. یه دیگه تفصیل غایله که این مشهور اینه در بعضی از موضوعات خارجی لازمه. مثلا فرض این کسی شک میکنه ایام سبسنام حجی های مستطیق شده یا نشده میگه نگاه کنه اموال که به اندازه استطاعت هست اول ماها بره بکنه فرض بکنه آیا شک میکنه آیا زکات بهش واجب شده سا... نگاه بکنه بکشه جورو، رو بکشه گندم، بکشه انگور اینا رو حساب بکنه اینه به حد نصاب رسیده نرسید الان افرادی که سر سال و کنسیشون میشه خب غالبا نیدوند من تو اتاق و تو خونه و تو آشباز و حساب میکنند خود و خوده و لبیه ها به رنج و شکرم که فرض میکنن. خب اگر شک کرد شک کرد که آیا مثلا با مثال اون چی که من الان دارم سر هزار یا 50 هزار تونم خب برای درائج را بکنم زارم لیکن دناشون به رضا اینه که مهموم استاد فهمدن فهست نید این از از شاید اینجا همینجوری فهمدن بشن خود بنای مشهور بر این است که ما در موضوعات خارجی در بعض از ما رو داریم داری این هم بحث لطیفیه خود این بحث بحث لطیفیه چون و بعدش هم اصولین ما در تحلیل و اختلاف دارن چرا در معرفت استطاعت و زکات فهست هست و این روز موضوعات خارجیه اما در غیرش نیست نکش چیست؟ فارش تا حالا در محل خودش عرض نفریم به نظره این با که این حقیقت سال و تفصیل نکش اینه که اصولاً فصل دو جوره اگه تفصیل کنیم یه دفعه نتیجه نتیجهش تذکر یاداغریه که در مقابل نسیانه یه دفعه نتیجه نتیجهش تعلم یادگیریه که در مقابل جفره این که از قبیل نسیان و یادابریه نه از قبیل یادگیری اون فحصی که محل کلامه در اون است که انسان اصلا نمیدانه نه اینکه دانسته و فراموش کرده از در حدیث معروف رفی که ما داریم نسنیم حدیث رفی که ما داریم نسیان با مالای علمون با هم آمده اما این امکان داره که بین نسیان و جهر ما فرق بگذاریم گیم خاله و این تون این علاج هم بیش از داره و زرادختای خاصی داره و میتونیم اجمارا بین نسیان و بین جان فرق داریم. حالا من فقط نفرم که آیا فکر میکنیم و در روایت معروف زوراره روایت بنزن سوم زورار بوده نه دوم یا سوم. ابتدا میگیم سوم یا در زورار درباره استدھا یکی از سوالها همینه که دیف خونی در لغاتش هست. فراموش نبود نماز کن. امام فران یعید و نماز نوازش تکار اما در لباسش نماز خون بعد از نماز بید خونی تو لباسی امام فران همه صلاحاتو در همه رو باید این جهل و نسیان در سهت صلاح فرق داشتن فتواه هم بر همینه فتواه هم که اگر نجاستی در لباسش بود فراموش کرد نمازش باطله اما اگر در نجاستی در لباسش بود و نمیدانه نمازش درسته این الان بنای علمای ما به عنوان یک حکم منصوص در مورد خودش باش تا می کنه که شما رو واسه تقی هست، ای زهره ما. این هر ساده است که چون طبقم قائل کی می شید تفکر ما یک تفکر کلی ما از اینجا گفتیم شاید ممکن است یک آثار کلی تری بار بکنیم بیش از مورد منصوص. من جلو آثار جهانی همین شد. چرا چون انسانی که زندگی میکنه فرض کنیم مثلا این اگر حوادث جنب باشه غالباً میدونم چقدر پول داره و حد استطاعت هست چون پول تو زندگی ما میاد غالباً اگر نمیدونیم منشه نوع فراموشیه در حیرت پس این فرض برای وقت نسیانه به منظره وقت اما وقتی که اصلا چی رو نمیدونیم این دیر زنده هستیانه. این نسیان نیست، این جهله پس ما فرق بگذاریم فرضی که نتیجه اشرف نسیانه با فحشی که نتیجه اش رفت این دو تا بگیم با هم دیگه فرق می‌ذارن واسه تفسیرا موکل دار محلی خیلی در میزان وارد رفیع در کده در نسیان هست در این دو تا با هم سازه از که روایتی که میگن در یک باب وارد بابش اونجاست اما ما می توب وقتی این دو تا قانون دارن میخوان وارد بشن نقاط فنی قانونی داره نیم که من باید بحث بشم چون بحث بحثمان بحثمان جازه شد من بلده لطایف و ضرائف را گایی دکت میفردیم و دارشم مجمن دوزم که آن فکر مستند این را چه این قسمت حالا برگردیم به موضوعی که دیروز عرض کرد دیرید ما عرض کردیم به طور کنیم اصول عملی شعنش اینه که در ظرف چهره فن نفتی اصلی در اصول یه فرض جهل است. و لذا بعد از اسمش گذاشتیم معقول ثانوی به اصطلاح اصولی. یعنی اون میاد فرض میکنه جهل شما رو روی جهل شما بنا میکنه و لذا خالی نهایی طبیعتاً اینطوره اختصاص به لفظ نداره رفع امتی اونم هم نمیخواد مثلاً. نه اصول عمل. بیرین شما یه قصابی ها داره گوش می در فرضی که شما نمی دانید تذکیه کرده بگه سوق مسلم بیرین او به قصه اما اگر شما دارید تذکیه کرده بیرین شما بازی سوق مسلم توی یا می دانید تذکیه نکرده. یا حرامه جای سوق مسلمی پس در اصول عملیه به طور طبیعی این هست که تمام اصول عملی فرد که محرد شده محرد فرد جهدش در جایی که شما جهد داشته باشید ولذا دائما اصول عملی محدودن به جهد به علم و خلاف تا علم و خلاف ما من دیگه اصل عملی برداشته باشه بلکه دیروز این زابطه هم خدمتونه ارز کردم اینشالا زابطه مفیدی بود هر روایتی که آمد و غایت در او علم به خلاف بود اونجا مراد اصل عملی است حکم ظاهری است هر رسان هر دلیلی که در او غایتی آمد که غایت علم نبود امر واقعی بود اونجا قاضی واقعی است مثلا یه هر چیزی حلال حساب بدانی که او را حرام کرده تا این که او را حرام بود این امر واقعی است این واقعا هر حلاله اما اگر هر چیزی حلاله تا علم به حرمتش پیدا کنید یه اصل هر دلیلی که تقییز پیدا کرد به علم این میشه اصل ظاهری درست شد؟ این یه مطلب مطلب دو گفت به ما این که اصول حالا اگه ما قبول بکنیم چه اصولی که خودش باشه یا به عنوان علم در جایی که جایی میشه که دو جوره یه در بوده در طرف حکمه یه در بوده در طرف موض فرقی در کلیات اصول نمی کنه فرقش در تطبیقاته بلا در کلیات در اونجا هم جهن می یعنی در حکم هم جهن میخواد در موضوع هم جهن میخواد. شما نمی دانید زنده اصطاب می کنید این هم جهن چون هم نمی دانید مثلا تنباکو یا سیگار کش هرامه یا نه نمی دانید حکم می به برای اینه قبضه قصد. لیکن نکته اینه. در جایی که حکمه قیل از مسئله اون قائلی کلیه در اصول یه نکته دیگه هست و اون این که جهر کی صدق میکنه. جهر کی میشه. چون حکم مرحله است که دست شما تنها نیست دست شاره و حاکم هم هست. اون من از کردم اصولا در قوانین بشری سه تا احتمال هست همیشه به طور کلی این به طور طبیعه طبیع. یک وظیفه مغنن این است که حق رو بیخ هر مکلف برسانه دو وظیفه مکلف است که دائم به مغنن مراجعه کنه ازش حق بخواد بپرسه امروز این رو زنگ زن به مجلس به خالمان امروز چه حق این کردی سه یک حد مشترکی بین این دو باشه یه مقدار وظیفش مال مُقنن باشه یه مقدار وظیفش مال مکلف باشه مثلا مُقنن اون حق رو در رسانه اعلام بکنه مکلف هم بره از فصل فصل پایگاه خبری مجلس سوال اون رسانه رو نگاه بکنه اون کاری رو که مکلف میخواد انجام بده اسمش فحثه این حد مشترکاً بنده مسئول محرزیه است این نقطه مشترک و سلاوی ما بین مقنن و ما بین مکلف در محرزیه پس کی مکلف تمامون خود مکلف جهل نسبت به حکم پیدا میشه سؤال وقتی که براتون خودش به معرضیت و نلینه رو رسون به مرحله معرضیت و ندید حالا جهل محقق میشه تحقق جهل الانه اون وقت وقتی تحقق جهل شد تا از که منبال مثال استثاب در شبهات حکمی اگر جاری باشه شاره میگه حال تو سابقه مثل همون مثال معروف استثاب در شبهات حکمی کلیه که از همه اوائل محل کلام گرم وقتی زن بعد از این قصاعدن و قبل الاختصاب چون در این نوت نفسی از نه سی از بر نه و نه بود لذا این اختلاف کردن از دیگر مسلم است و حرمت میکنیم چون که اولین دیارانم از دیگر نه است خود میشه از تاتو برای جاری میشه نه سنی اش یوزر نه خب کی فاید برای اون جهت پیدا میشه کی وقتی به ادله بر وایات به آیات مراجعه کرد چیزی پیدا نکرد اون وقت میشه جهت آدشه بررسی نه به هر دم اردیگر شان قاصق اول مقصد مقصر باسر بود که هستم. هستم و لذا خود هستن شهادتش هم مقصره ولی لزوم روشن شد درست پس علاوه این در اصلی که در شواهد حکمی کلی هست باید خودش رو به حد معرضیت برسونه در, در اونجا چیزی ندینه اون وقت میشه چی جاهر در بخش موضوع بحث معرضیت مطرحه این در بخش موضوع آیا این ماهی خارجی بول است یا بول نیست یه اصلا کار شارنی بحث معرضیت مفرح این مفرحی بحث این بحثی کنان عرض می کنم این خابلتر در کل دانشه حقود و بمالیات هم دو دنیا؟ و لذا آیان در این بحث رو مفهر کردن تو هم بحثه چه نقطه هست بین شواهد موضوعیه و شواهد حکمیه که در این یکی فرط بازد بعضا موضوعا نه در موضوعی هم فرط بازدن چه فرام کنم؟ نه این نیست نقطه الان یک این نقطه و قانونی شد پس در هر دو موضوع برای عصر جهل. لیکن در شواهد حکمیه جهر کی این محدد میشه که فحض بکنه به معرضیت برسه و نبینه اون وقت میگن جاهل چون وقت چی بشن جاهله به حکم اما در باب موضوع اصلا معرضیتی محرمی اصلا شاره کاری نمیکنه. آیا این کتاب خارجی قصریست یا نه این وظیفه شاره نیست شاره تکاری نکرده آیا این مایه خارجی خمرست یا آبستی وظیفه شاره نیست و به عبارت اخرى در بابه موضوع از قبیل قضایای اتفاقی یعنی هر وقت پیدا اون حکم میاد هر وقت خمر آمد به شما نگفته قانون به شما میگه برو خمر پیدا و برو چی چیزی ما داریم پس هرش نکتهش در لحاظ قانونی جهل در هر دو جهله فحر میکنه لكن در یکی جهنه حکم که با تحد معرضیات طرح بکنه در یکی معرضیتی نیست که با اون از خودش درصوده تمام <تصفيق> موضوعات همینطوره بله ممکن است شاره مقدس در یک ای جهل احتیاج بکنه که اون که در شواذ صلات بر ما معروفه ما افروج انبال جهل احتیاج که این تو بحث انرو بحثش تو برات پس این بحث نقطه فنیش اینه یک ای نقطه قانونی داره که بین شباهاتی که در اصول ای این اصولی که در شباهات موضوعی جاری میشه با اصولی که در شباهات حکمی جاری میشه فرقه نه فرق به لحاظ هر دو مثل همه در این جهر مثل نکته نقطه شون این نقطه اینچالا واضح و روشن و بدیدی شد این پس بنابراین با این حسابی که قسمتون از کردیم فرقی در این جرده این ها نمی که آقای خوری این نکتی نکتی نیست که به لحاظ خود اصول فرم و اصولا با این بیانی که ما الان شد ما از اون ارز کردیم اجمالا روشن شد که اصلا این بحث این ای که اینها مطرح کردند کردن اصولا مفرح نیست یعنی اصولا این ها تو بحث اصول عملی بحث بحث مطرح مفرح کردن اینجا عنوان فصل مخصص. ما در حقیقت در موارد قانونی فحص از مخصص رو گاریم. اما در خصوص این شریعت مقدسه به خاطر جهات مختلف یک مسادر تشریه یک قسمتش قرآنه یک قسمتش سنته در اون بخش قرآنیش گاه گاهی مثل نسخ میش آمده علامه یقاب حالا نسخ یا نسخ نیست در اون بخشی که مربوط به سنت میشه صدورش، کیفیتش، متنش، خصوصیاتش اینقدر اختلاف ها هست این منشاء شده که در این قانون یعنی در فقه اسلامی فقیر نتواند به مجرد ظاهر به ظاهر یک آیه عمل بکنه و این فهض از مخصص نیست مثلا از کدم اون اصولی اهل گفت گفته شما، فرض از مجاز نمی‌کنیم شها از مخصص نمی‌کنیم عزیزان، فرض نمی‌کنیم ما فرض از حقیقت و مجاز هم می‌کنیم یعنی به خاطر این حالتی که در این فقه پیدا شده ما فرض از ناسخ و منسخ هم می‌کنیم فرض از مخصص هم می‌کنیم می فرض از مجاز هم می‌کنیم فرض از کنایه هم می‌کنیم هم همه رو فرض و لذا در اصلا این بس خصوص مخصص نیست و گاهی نتیجه نتایجی که هستم میکنه یک نرخ نیست گاهی بعد از فاز از یک ماه بعدی که در فیلر انجام میگیری آخرش میگو این مبارکه اصلا اصلاح نداره یا میگیم اصلا این مبارکه اصلاح داره تا از خودش آمده میکنیم برای آخر. اصلا می این آیه در مقام اطلاق نیست. نفیه اطلاق می بحث از باقید نیست. از بحثای ما در بحثای فقهی که الان به عنوان داره فقه شده این فقط بحث از اون نیست. تازه اضافه برای این بحث از یک سلسله مسادر تشریع هم هم. مثلا در اینجا میگیم ظاهر این حدیث مبارک که این از داشت قیاس ما در میان اهل سنت سن این قیاس رو بر حدیث هم مقدم می کنن خب در و اصولا ازده زیادی از این مواردی که الان در ذهنیت و حسولین ما و صافقه های ما جنبه تخصیص رو داره اصلا تخصیص نیست. من از کدم متاسفانه در دنیای فقه ما مثلا این های اخیر ما چون خودمون با از اون زمینه های فقهی جدا کردیم یعنی فقیه آم لذا ما بیشتر استلاح تخصیص رو به کار برویم در اینکه محترسته که مدرسوز مدرسوز تخصیص نباشه من مثالهای نه رو مستم همین نماز خونده که این چند بارم هست در لباس حریب خب آقا مثلا گفتن آیه ما خود و زینت کومندو کل نسته این تفتر در حال صلاح زینت در اینجا ماند لباسه بسیار من گفتن از این اطلاق آیه خارج شده لباس حرید نماز چرا چون امام رضا برمودن؟ بعد از امام لازم اینجا به خویی ممکن از عام یک زمان بیاد خاص بعد از دویست سال بیاد اینجا آم بش خلوزی نتباید کل محصبه مخصصش هم در زمان از رضا سال فاصله شده اینا این رو به عنوان مخصصی هستم من دویست بعد از زرست این احای مباری این حدیث مبارک امام رضا اگر ما معنا بکنیم الان در جبر خودون همین جوره اما اگر این رو ببینیم در جبر آم مخصوصا از کردمی که از خصایص مهم مذهبیه که از عجایب کار ایشان صلوات الله علیه ایشان مورد قبول کلیت فرق اسلامنده حضرت نوای اسماعیلیان که خدمت ایشون می‌رسیدن خیلی ایشان اعتراف داشتن ها ده از زیدی‌ها دور وای ایشان سونیه های مدینه خیلی عجیبه پدر ایشان موسیم جفر اینقدر احترام خواهد نبوده اما برای حضرت رضا برای محوم صادق هم نبوده این هم خیلی عجیبه که از عجایب کار محومون شده رضا هم به قدر هم میشه رضا هم میگه مهمون خلاف خواهد یا حاضر رضی چون زواهر عبارت متون قدیم رضی خونده میشه نه رضا خودم راضی باشم نه. دوست ندوشم. حالا حالا نظریات داشتم و بود. امام رو با شایع امام که گفتین جوابشو. و از اثر من در تقریر و تهذیب ابن حجر در خود تذکر و تهذیب هم اضافات به تهذیب کرده کتاب تزکیه کمال مزدی رو که انسان کتاب بسیار نافعی در اینجا و اضافاتی هم داره مستقیما که در اون بخش اضافاتش نه رو که حضرت حضر در سن بیس سالگی در محصول مدینه می و سن رو می خیلی بشونن چون اونا در مثلا فرصه کفای خطیب بغضا دیگه سن بیس سالگی طلب حدیث بوده بین اونا اصلا متعارب که قبل از بیس سالگی وقت آزه محدث, محدث رو در فتوهی تا فقید بشه محدث رو در اول خماه بیس سالگی در سن بگنم بی... تو خیلی عجیبه با وجود سال دیگیستی دیگی که فوقهای بزرگ بشت حضرت در سن 20 ساله فکر میکنم من در مساده شیعن نگیرم یا روی که در سن 20 سالگی در مساده نبیشون فتوا میدادن این خیلی عظمت مقامه خب من ارز کردم اگر در اون زمان ما زنده بودیم یک فقیه مدینه میگفتن که علیه این فرمون نماده در باطله او تخصیص ن او اینه میفهمید که علیه ابن موسا در مسئله اجتماعنه امتنائیه <تصفيق> اهل سنت تو مسئله حریب اختلاف شده الان در فقمشون علمای اهل سنت عبدیشون گفتن نماز باخله عبدیشون گفتن نماز, عبدیشون گفتن نماز سنگیه روایت هم از رسول الله ندارن روایتی که ما از رسول الله داریم و سنیه دارن عدم لفظ حریبه لا سر الحریبه اینا آمدن نسبت بین سله ولا تل به حساب کرده ازدهش؟ بلا؟ کسی چیز اینقدر هر کسی که به اجتماع بود میگه نماز درسته هر کسی به اجتناب بود میگه نماز باطله زمان امروزه بحث اجتماعی هم نکرده خاصش همین نیست واقعا ترتیب اجتماع رو وضع کردم من تایید شما دارم در اون زمان خوب دست سنتر کنید بحث اجتماعتون این از زمان صحابه بحث اجتماعتون به عنوان فرع مطرح شد بعد ای رو از فقه جداش کرده شد اصول فقه اما ریشش همون بود یعنی مبارسی مثل نه هم در فروع فقهی داری ما هم داریم اونا هم دارم. هم بعد تو اصول آمد یعنی اگر این حدیث و مبارس رو کسی در اون زمان به یک تقییر بگفتن یا در خوفه بگفتن از دادات هاونواله قایل به امتناعه مثل آرکوی مثلا فرمان که نماز در لبا سهرید من باسه در حقیقت این رو تخصیص نمیفهمیدن، این رو تعیین شریعت نمیفهمن نه اینکه این مورد صلات در دار قصی هم مثلا برابر احساس در لوازم خاصان واجبه فرض میکنه وقتی قائل به اجتم امتنار شدی اختصاص به حریر نداره این رو اصطلاح ببینید الان تو تخصیص میگن عام داره پیغمبر بوده مخصص 2 سال بعد آورده و این مسئله بوده که فقای عبدالسان نخوابی خلاف کنه اده امتنایی کنه به اشتمامش ما فعلا روازی از رو امیر موندیم که مضمونش امتناییه زهرش اینطوره که وقتی مخواهی نماز بخیم فندور فیمت و صدی و علامت و صدی فنه الله من هست، صلافه امراه الله و عباه الله مخن وزیده همیست دقیقه فرمودی پس این دقیقه تخصیص نیست اون تنمول بکنید این در حقیقت امام مفاهام مثلا در شریعت اسلام اگر امری بود و نهی بود نه دائما مقدمه شریعت باز معنا بشو دیگه فخوزین از گفت ولذا عرض کردی من نصوصی کشوریش عرض کردم کسایی که قائل به اجتماع آخر و هم برای امر اطلاق می بینن هم برای نهی مثلا امر صلات اطلاق داره حتی در دار غصری. لا تخطر اطلاق داره حتی با صلات سهانی که انتناعی بودن به خیلی از این معنایی که ما داریم بگیم اینا رو گفتن نهی اطلاق داره امر اطلاق را داره <تصفيق> وقت نگاه به نامحرم و نماس کن ادهشون قاید بکنم با سلطان نه از اون جد نصال تنها انفرشوال ممکنم دقیق کردیم شما عرض بکنم پس نهی رو اطلاق یعنی لا تقصد اطلاق داره حتی تلاق تصرف قصی ممنوع هست اما صله اطلاق داشت تو در هر جا نماز حتی در دار این دیگه اطلاق نداره یه تصور و نظام انعقادن اصلا ركیزه اساسی زیربنای اساسی بحث اجتماع نمش ثبوت اطلاق برای هر دوست اگر اطلاق رو برای یکی گرسون چه بحث اجتماع داریم پس در خیانت خوب دقت این بحث از مخصص نیست این فهض از به اصاب قواعد و که در اسلام هست و